گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید گفتم که ماه من شد گفتا اگر برآید. آید گفتم زمهر ورزان رسم وفا بیاموز گفتا زخوب رویان این کار کم تر آید گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم گفتا که شب رو بستو از راه دیگر آید گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد گفتا اگر بدانی هم اوت ره براید گفتم خوشا هوایی که از باد صبح خیزد گفتا خنک نسیمی که از کوی دل براید گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت گفتا تو بندگی کن کو بند پر براید گفتم دل رحیمت کی از سود دارد گفتا مگوی با کس تا وقتان در آید گفتم زمان اشرت دیدی که چون سر آمد گفتا خموش حافظ که این غصه هم